به نام خدا با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز داستان دختر بازرگان و هفت برادر قسمت سوم شنوندگان عزیزم یاداوری میکنم در قسمت پیش داستان به جایی رسید که چوپان مراد به کمک دیو به بالای کوه بیستون رفت جایی که نگار در اون آرامگاه خودش آرامیده بود و حالا بقیه داستان رو با همدیگه می پیش ببریم. لطفا با من همراه باشید. مراد با ناامیدی به سرش میزد و با صدای بلند گریه می کرد. دلش میخواست خودشو خودش رو بکشه و برای همیشه کنار مشروغش آروم بگیره. اما تو همین لحظه هفت برادر سر رسیدن اونها از دیدن جوونی که بسیار گریه میکنه و داره خودش رو میکشه تعجب کردند. بعد از اون که کمی آرومش کردن برادر بزرگتر ازش پرسید تو کی هستی؟ چوب هم مراد همه ماجرا رو برای هفت برادر تعریف کرد و بعد پرسید چند سال از مرگ نگار زیبا میگذره؟ برادر بزرگتر جواب داد تا به امروز سه سال شده اما مرگ اون برای ما معمایه با اینکه مرده اما به نظر میرسه که در خواب عمیقی فرو رفته چوپان فریاد زد من باید این معما رو حل کنم برادر رو گفتن این کار از تو بر نمیاد اینجا بمون و با ما زندگی کن و هشت برادر بشیم چوپان مراد گفت هفت سال منتظر من باشید اگه برگشتم که خوب برگشتم اما اگه برنگشتم بدونید که منم مردم صبح روز بعد بعد از خدافزی با برادرا مراد راه افتاد قبل از هر چیز یه بار دیگه رفت بالای کوه بیستون و وارد اون آرامگاه مرمری شد روبند نگار رو باز کرد و در حالی که سخت گریه می کرد خطاب بهش گفت نگار زیبا به محض اینکه معمای تو رو حل کردم بر تا همیشه پیش تو باشم. چوپان به آرامی روبند رو روی صورت نگار کشید و از آرامگاه بیرون رفت و راهی در تاریک دیوهای قول پیکر شد. به ابتدای در رسید. دید همون دیوی که اونو به قله کوه برده بود به دیدارش میاد. دیو پرسید سلام بر توی پهلوان به کجا داری میری؟ مراد گفت خواهش میکنم منو به کوهستان قفقاز به قله اون کوه بزرگی که جایگاه باد هست ببر. دیو گفت برو پشتم سوار شو چوپان به نرمی پرید و سوارش شد. دیف به آسمون پرواز کرد و به کوهی که باد در اونجا بود برد بعد دوباره به آسمون پرواز کرد و توی ابرها ناپدید شد مراد به نوک کوه رفت و با صدای بلند فریاد زد ای پهلوان پهلوانان باد نیرومن به صدای من جواب بده تقاضایی دارم که ناگهان صدای وحشتناکی به گوشش رسید و تمام اطراف لرزید باد پرسید چوپان تقاضای تو چیه؟ چوپان گفت نگار محبوبم سه ساله که در تابوت کهربایی آرمیده هنوز نمرده اما به خواب عمیقی فرو رفته این معما رو برای من حل کن باد گفت ای چوپان این معممایه که من نمیتونم حلش کنم شاید ماه بتونه. باد به کمک چوپان اومد و یک گاوه نر رو صدا زد و گفت چوپان رو به تپه نقرعی جایی که ماه زندگی میکنه ببر. مراد سوار گاو شد و گاو به آسمون پرواز کرد و با شتاب به سوی تپه نقرعی حرکت کرد. چوپان به قله تپه صعود کرد و با صدای بلند گفت ای وزیر خوبان ماه زیبا به صدای من جواب بده تقاضایی دارم محتاب بیرون اومد و گفت تقاضای تو چیه؟ چوپان گفت نگار محبوبم سه ساله که در تابوت کهربایی آرمیده هنوز نمرده اما به خواب عمیقی فرو رفته این معما را برای من حل کن ماه گفت: «ای چوپان این معمای که من نمیتونم حلش کنم شاید خورشید بتونه چوپان با ناامیدی در حالی که اشک از چشماش جاری بود به سمت باغ طلایی خورشید حرکت کرد در سر راهش به شیری برخورد کرد شیر ازش پرسید ای چوپان چرا گریه میکنی؟ مراد گفت نگار محبوبم سه ساله که در تابوت کهربایی آرمیده هنوز نمرده اما به خواب عمیقی فرو رفته دارم سعی میکنم این معما رو حل کنم شیر با شنیدن این حرف پرسید و حالا داری کجا میری؟ مراد گفت به نزد خورشید؟ دل شیر به رحم اومد و گفت بیا پشت من بنشین، تو رو به باغ تلایی خورشید میبرم. چوبان به پشت شیر نشست. شیر به آسمون پرواز کرد و اونو به تپه طلایی برد. مراد به قله تپه طلایی رفت و با صدای بلند گفت ای پادشاه خوبان خورشید بزرگ به صدای من جواب بده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 به آرزوی دلش نرسید، اون دوست داره زندگی کنه، عشق بده، مورد علاقه و عشق باشه، به همین دلیله که هنوز نمرده و به خواب عمیقی فرو رفته. مراد در میان حقیق گریش گفت، آه ای خردمند تر از همه خردمندان، خورشید زیبا، نگار منو دوباره زنده کن به معشوقم زندگی دوباره بده خورشید دلش به حال چوپان سوخت و گفت ای چوپانه بینوا غمگین نباش پیش نگارت برگرد از خدا میخوام سعادت و نیکبختی رو به تو بده مراد خورشید رو ترک کرد و راهی سفر به کوه بیستون شد چهل روز و چهل شب راه رفت تا به دره باریکی رسید و دیوش رو صدا زد. دیو اومد و گفت سلام بر توی پهلوان چه فرمایشی داری؟ چوپان درخواست کرد که منو به کوه بیستون به آرامگاه مرمرین ببر. دیو گفت بر پشت من سوار شد. چوپان پشت دیو سوار شد. دیو به آسمون پرواز کرد رفت و رفت تا به آرامگاه مرمرین رسید چوپان از دیو تشکر کرد و گفت سه بار به من کمک کردی بیا برادر هم باشیم. چوپان و دیف همدیگه رو در آغوش گرفتن و بعد از همدیگه جدا شدند مراد وارد آرامگاه شد و روبند رو از روی صورت نگار زیبا کنار زد درست در همون لحظه در بلندترین نقطه کوه بیستون آفتاب طلوع کرد. خورشید پرتوب درخشانی رو از میان سنگهای آرامگاه عبور داد و روی صورت نگار زیبا انداخت. خدا به او لطف کرد. دخترک اخم کرد. ادسی کرد. چشماشو باز کرد. پا شد تو تابوت نشست و با تعجب گفت چقدر زیاد خوابیدم برادرا الان میان باید شام حاضر کنم نگار همین که از تابوت بلند شد چوپان مراد او دید و با شگفتی پرسید اما شما چطور به اینجا اومدی بعد مراد اونجوری که براش اتفاق افتاده بود توضیح داد نگار وقتی تمام حرف های و شنید گفت ای جوان شجا تو عشق خودت رو نسبت به من ثابت کردی. من هم تو رو دوست دارم و میخوام همسر تو باشم. در همون لحظه هفت برادرها وارد قار شدند. وقتی دیدن که نگار زنده است خوشحالیشون حد و مرز نداشت. نگار یکی یک که برادراش رو بوسید و گفت این جوان شریف زندگی رو دوباره به من داد برادرها چوپان مراد و در آغوش گرفتن و اونو همراه نگار زیبا به خونشون بردن هفت روز و هفت شب عروسی خواهرشون رو با چوپان مراد جشن گرفتن حالا هفت برادر نگار و همسرش مراد رو در جشن عروسی میذاریم تا لذت ببرن و به سراغ گلناز جنایتکار میریم گلناز مثل سابق تمام روز رو در مقابل آینه سهرامیز مینشست به خودش ور میرفت و با آینه حرف می‌زد. یه روزی گلناز که همینطور سرگرم تحسین زیبایی خودش بود از آینه پرسید دلم میخواد بدونم آیا توی دنیا کسی هست که زیباتر از من باشه؟ آینه جواب داد بله چون این کسی هست. ناز نزدیک بود از ناراحتی دق کنه. حتی نپرسید که اون زن زیبا چه کسیه. فکر کرد حتما نگاره که زندگی دوباره پیدا کرده. گلنا سرخدمتکارش رو صدا زد و بهش گفت فوراً برو و ببین خواهر هفت برادر کجایه و چیکار میکنه سرخدمتکار وسایل سفرش رو آماده کرد و راه افتاد مدت درازی راه رفت و وقتی به کوه بیستون رسید به بالای قله رفت و آرامگاه مرمرین رو دید سر خدمتکار از کوه که بالا می رفت تا به آرامگاه برسه وقتی که وارد آرامگاه شد تابوتی رو دید که روی اون با آب طلا نوشته شده بود که در اینجا دختر تاجر نگار زیبا آرامیده هنوز خوندنش تموم نشده بود که درویشی وارد شد سر خدمتکار ازش پرسید درویش به من بگو چه کسی این آرامگاه رو ساخت و قبر چه کسی درونه؟ درویش پاسخ داد. هفت برادر خواهرشون نگار زیبا رو که دختر تاجری بود از دست دادن. اونها بودند که این آرامگاه رو از سنگهای گرانبها ها ساختن. دخترک رو در تابوتی کهربایی گذاشتن و روی اون نوشتن. در اینجا، دختر تاجر نگار زیبا آرامیده سه سال بعد نگار دوباره زنده شد از تابوت بیرون اومد آرامگاه رو ترک کرد و به خونه هفت برادر رفت سر خدمت کار وقتی فهمید که نگار زیبا زندگی دوباره پیدا کرده و به خونه هفت برادر برگشته فورا پیش خانومش گلناز برگشت و اون که شنیده بود شرح داد گلناز فوراً تمام جادوگرا رو صدا زد و گفت هر کدوم از شما بتونه نگار زیبا رو بکشه من به اندازه وزنش بهش پول میدم چشمای جادوگرا از طمع درخشید و یکی از اونها پیشتستی کرد و گفت من اونو میکشم جادوگر لباس گدایی پوشید. عصایی به دست گرفت و لنگ لنگان به سوی کوه بیستون راهی شد. وقتی به خونه هفت برادر رسید، آه ناله سرداد و گفت: توی دنیای به این بزرگی من تنهای تنها هستم. به من کمک کنی، به من رحم کنی. وقتی چشم نگار زیبا بهش افتاد مشکوک شد اون جادوگر پیری رو به یاد آورد که بلایی به اون بزرگی رو به سرش آورده بود با خودش گفت خدایا این یکی از اون جادوگرایی که بیشباهت به جادوگر اولی نیست جادوگر وقتی این حرفو شنید عصایی رو که در دست بلند کرد تا بر سر نگار بکوبه اما در همین موقع برادرا رسیدن و قبل از اینکه جادوگر بتونه کاری بکنه اونو تکه تکه کردن بعد از گذشتن از این خطر نگار در کمال خوشبختی با همسر و هفت برادرش به زندگی ادامه داد یه روزی نگار زیبا به مراد و هفت برادرش گفت خیلی دلم میخواد پدرم رو ببینم بگذارید که همه با هم به دیدار پدرم بریم و بعد از اون دوباره به همین جا برمیگردیم. برادرها و مراد با اشتیاق پذیرفتند. یک تخت روان طلایی درست کردند، نگار زیبا رو روی اون نشوندند، اسب‌هاشون رو زین کردند و راهی شهر شدن که خاج ابو طالب تاجر رو ببینند. حالا اونها رو تو راه تنها میذاریم و به سراغ گلناز مقرور و احمق میریم. گلناز بی در انتظار بازگشت جادوگر پیر بود. هر روز لباسهای زیبایی میپوشید و خودشو می‌آراست و جلوی آینه سهرامیز میمشست و پیوسته میپرسید دلم میخواد بدونم آیا در دنیا کسی زیباتر از منم وجود داره یا نه؟ و جواب همیشه یکی بود. بله وجود داره. گل ناز فکر میکرد پس هنوز نگار زنده است. دیگه حوصلش سر رفته بود. یه بار دیگه جلوی آینه رفت و پرسید. دلم میخواد بدونم آیا در دنیا کسی زیباتر از من وجود داره؟ و آینه بازم جواب داد بله وجود داره گلناز به قدری ناراحت شد که با عصبانیت آینه رو به زمین انداخت و زیر پاش خورد کرد آینه در هم شکست اما هر تکش می گفت هست هست هست گلناز گوشاش رو گرفت و داشت با عجله از خونه بیرون می رفت که در اول در با نگار زیبا روبرو رو شد. نگار به همراه شوهرش و هفت برادر داشت وارد خونه پدر میشد. گلناز به محض اینکه چشمش به نگار افتاد جیغ کشید و بر زمین افتاد و مرد. در این لحظه خاج ابو طالب سر رسید. بعد از سالها دختر عزیزش رو دید. اون در آغوش گرفت و نوازش کرد و بر دو گونه هاش بوسه زد و اشک شوق و شادی از چشماش جاری شد. سرانجام نگار به پدرش گفت اینها برادران من و این هم همسر منه. خاج ابوطالب طالب اونها رو هم بوسید. وقتی سرش رو برگردون جسد زنی شدید. نگار به پدرش گفت برای او عزادار نشو تنها همین زن پست فطرت بود که میبایست میمرد گلناز رو همون روز به خاک سپردند و روی قبرش نوشتند. میخواهم بدونم آیا کسی در دنیا هست که زیباتر از من باشه؟ نگار زیبا، برادرانش و مراد همه ماجراهایی رو که براشون اتفاق افتاده بود رو برای خاجه ابوطالب طالب شرح دادند و هر کدومشون نفرینی بر گلناز نثار کردند دختر بازرگان و هفت برادر افسانه های مشرق زمین صفحه دویست نویسنده یوری کراسی مترجم گلاغا دانشیان نشر اشاره چاپ اول 1368 شنوندگان عزیزم امیدوارم از این داستان خوشتون اومده باشه لذت برده باشید هر سه قسمت رو با من گوش کرده باشید و در داستانهای بعدی هم منو همراهی کنید همه شما رو به خدای بزرگ میسپرم سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها قصه از غول ها و کوتوله ها ماجره از جادوگرها سفر به سرزمین های جادویی و تلزم شده رفتن به دنیای پریان ماجراجویی در, ماجر در سرزمین های زیر دریا همه اینها و بیش از اینها در کانال تلگرامی هزار افسان داستان های ای صوتی